به حزب تشکیل شد حزب کافلام با تمام نیرو می کوشید تشکیلاتش را در آناتولی راه بیاندازد و در جاهایی که تشکیلاتش مستقر شده به حزبی فراگیر تبدیل شود اهالی قصبه جیم، آدمهای بیداری بودند چون سالها تشنه دموکراسی بودند می‌خواستند هر نوع حزبی در قصبهشان تشکیلات داشته باشد به جز حزب کافلام تازه تأسیس شده بود همه حزب های مشهور و مهم در قصبه جیم تشکیلات داشتند. تعداد باسوادها در قصبه جیم از دیگر قصبه ها بیشتر بود. همه روزنامه ها را می خندند. در آن زمان روزنامه ها هم مرتب درباره حزب کافلام مطلب می نوشتند و خبر میدادند. تشکیلات های هزبهای های گوناگون در قصبه جیم با یک دیگر دشمن نبودند. همه با هم دوست بودند. چه اعضای حزب حاکم چه های حزب مخالف همز فندی رئیس تشکیلات حزب حاکم در قصبه جیم آن شب محمود آقا رئیس تشکیلات حزب مخالف در قبه جیم را کناری کشید و در گوشش گفت محمود آقا به نظر توزا و احوال چجوریه؟ این حزب جدید خیلی شلوغش کرده بدجوری داره گنده میشه منم هم میخواستم همینو بهت بگم بیا فردای جلسه بذایم این قضیه روی جوری حلش کنیم موافقی؟ موافقم خیلی هم خوب میشه، تو رجب آقا و اسمایل آقا رو خبر کن، منم به بکرفندی میگم. فردا بعد از نماز عصر تو مغازه من جمع میشیم و درباره این موضوع صحبت میکنیم. فردا آن روز در مغازه جنس جور محمود آقا که در آن وسایل کادو و شیشه و کریستال میفروخت جمع شدند. همزه افندی رئیس تشکیلات حزب حاکم در آن قصبه گفت دوستان امروز که اینجوریه فردا معلوم نیست چجوری باشه یه دفعه میبینی حزب ما بازنده میشه و حزب رجب آقاینا برنده بعد حزب رجب آقا بازنده میشه و حزب اسماعیل آقاینا برنده مساله اصلی نه حزب ماست نه حزب شما مهم کارای غصب است وقتی حکومت دست حزب بکر آقاینا بود از تا تاهیسگاه راه آهن جاده کشیدیم کارخونه نوشابه سازی راه انداختیم وقتی حزب ما به حکومت رسید ابله کشی کردیم برق آوردیم فردا معلوم نیست اوضزا چجوری باشه؟ فعلا که یه حزب تازه درست شده بهش میگن حزب کافلام روزنامه ها رو که نگاه میکنی همش خبرای این حزبه مثل که کاراش داره خوب پیش میره. از قدیم گفتن سی با که میندزی بالا تا بیاد پایین هزار تا چرخ میخوره فردا نگاه میکنی می‌بینی شده حزب حاکم و حکومت دستشه اون وقت دست ما میشن که چرا تو قصمون تشکیلات این حزب راه انداخته بودیم خب. ما هم که تو این قصبه هنوز خیلی کار داریم که باید بکنیم. واسه همین میگم تو قصبمون یه شعبه هم از این حزب درست کنیم. نظرتون چیه؟ اسماعیل آقا بعد از شنیدن حرفای همزرفندی رئیس تشکیلات حزب حاکم گفت درسته، ضرری که نداره. یه وقتی دی لازم میشه. فایده داره و زرر نداره. رو کولمون که نمیخوام سوار بشن. همزرفندی گفت خیلی خوب. اما باید موازه باشیم رئیس رؤسای خودمون عصبانی نشن. رجب آقا گفت: جان منم زفندی. با باز کردن شعبهه حزب کل مملکت که طرف اون نمیره. خیلی خوب میشه اما نباید کسی بو بره که شعبه رو ما باز کرده. ایم. امو بکر تا حالا کسی از بغیهش مگه بویی برده. هرچقدر حزب بیشتر باشه واسه مملکت بهتره. منتها باید یکی یکی و به نوبت دولت تشکیل بدن. اون وقت با هم به رقابت میفتن و کار انجام میدن. هم زفندی رئیس تشکیلات حزب حاکم گفت: بله، همینطوره. حزب ما کارایی که باید واسه قصبه می کرد همه رو کرده. مدرسه ساخته راه آسفالت کشیده لوله کشی کرده اما دیگه کاری نمیکنه. من این دفعه به یه حزب دیگه ره میدم. بذار این یکی حزب هم بیاد و کارای جدید انجام بده. محمود آقا گفت؟ این حزب جدید انگار کارش گرفته به نظرم تو انتخابات هم برنده میشه آقایون، بهتر معطر نکنیم یه شبه واسه این حزب هم باز بکنیم هرچقدر زود تویش تاثیب بکنیم بعدا میتونیم بگیم ما همین کارا رو کردیم همه حرفها درست اما بین ما کسی هست که عضو هیچ حزبی نباشه؟ نه نیست خب همینش بده باید همیشه واسه حزبایی که تازه تاسیس میشن آدم یدکی داشته باشیم حسین افندی ارزه حال نویس عضو هیچ حزبی نیست. بگیم شعبه حزب اون دایر بکنه. اسمایل آقا گفت: ما اگه بخوایم خدمت درستی به دموکراسی بکنیم، باید چند نفرمون از حزبشون استعفا بدن. باید منتقل بشن به اون یکی حزبا اون وقت اگه تو انتخابات برنده بشن و سر کار بیان، دم نمیتونن بزنن. بهشون میگیم ما واسه خاطر شما از حزبمون در اومدیم و عضو این حزب شدیم. اون وقت هر کاری بگیم میکنن. همزه افندی گفت راست میگه از هر حزبی سه چهار نفر استعفا بدن به محسن افندی نام نویس هم بگین به همه روزنامههای روزنامه های استانبول نامه نویس و همچی خبری بده که همه حزبها حزب دارن از هم میپاشن همه به عضویت حزب کافلام در می آیند آقا گفت خیلی خب. حالا کیها استعفا میدن؟ اسمایل آقا، بیا شیر یا خط بندازیم تو حقی از کسی زایه نشه فهرستای مختلف از حزب ها شیر یا خطن داختن تا معلوم شود چه کسانی باید استعفا دارد رئیس تشکیلات حزب در غصبه جیم هم جزو کسانی بود که باید استعفا می دادند حزب کافلام در غصبه جیم هم این طوری تشکیش داد.